يدرك لم تانس ب دنيانا ولم تسر خلف قيف السيف ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستنطر الذل اصغاءا بسم الله الرحمن الرحيم اي انكم نومتوا بهترين سراغاز سخن گفتن ان در زبان آفرید ستایش و سپاس خداونده عالمیان راست آن ذات که آفری زمین و آسمان است ذات که انسان را بیافرید و بر همه مخلوقاتش برتری داد خدایا سپاس برای توست که دین را شرع نمودی و سپاس برای توست که فرمان دادی و سپاس برای توست که آسان گردانیدی و سرنوشت نمودی درود و سلام فراوان بر رسول گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم آنکه بشریت را از تاریکی های کفر و شرک و بودپرستی بروشنی دین مقدس اسلام رهنمون فرمود برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به بیست و برنامه هفتوار زبانی دری خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصتی را محیا نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای الله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم. امروز جمعه اول ماه مبارک رمزان. فرا رسیدن این ماه مبارک را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می داریم. Mohi Mubaraki Ramazon, Mohi Nuzuli Qur'ani Karim wa Biatati Payambari Islam Sallahu alayhi wa sallamas. Mahi mahfiratu <muggfiret och> zush, Mahi Judu <och> Karamu Bhakshush, Mahihi Rabadat wa Aba Diyma Sajidun Manabir, Mahi Sabru istiqhamat, Mahi ithar Tharwa az Khud Guzashtagi, Mohi jihadu Talosh, Mahi Rahmatu Azodhiy Musalmonon az Atashi Jahannam, Wamahi Sazundagi wa Tahdibi nafs که مسلمان میتواند در پرتوی قرآن کلام الله مجید و در سایع عبادات صیام و قیام به معنویات و الطاف ربانی دست یابد و خود را محذب و مصفا سازد و چنان که بندگانی بندگان شایست و نیکوکار خداست تقصیرات و نقص گذشته خود را جبران نماید چنین ماه فرصت است بسیار ارزشمند که نباید لحظه از آن را در غفلت گذران، از این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماین. آن کس که رمزان سبب آمرزش گناهان نگردد و از دنیا بدون استفاده از ماه مبارک رمزان برود خداون جل جلاله او را از رحمتش دور میگرداند. چه قدر غافلند کسانی که از این ماه خیر و برکت و از فرصت مناسب آن استفاده نمی نماین خداون توفیق عبادت و استقامت بر شریعت نصیب همه ما فرماید و در راه خدمت به دین اسلام و مسلمین ما را موفق و معید بگرداند بله همکاری عزیز به طور میراییم به طرف داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی به استثنای داشته های بیانیه وار ای مسلم را میشنوید که در مورد فضیرت های ماه مبارک رمضان تهیه گردیده است در مرحله اول طبق معمول سلسله اندرزها فضیلت ماه مبارک رمزان از مولای سیب مسلم مصاحبه جندالله با یک برادر مجاهد که در این اواخر از شمال افغانستان برگشته است مروارید هفته و همینطور در بخش تحولات هفته گزارشات داغ به خدمت شما تقدیم میگردد با جندالله باشید سلسله اندرس ها هیچ گه شمع بدون فتیله نسوخت تا که عمل نیست علم به اثر است در این نتوانی نشستن جاویدان پروین همان به تاکی بنشینی نحال چند بنشانی ایدل دل عبث مخور غم دنیا را فکرت مکن نیامده فردارا هر که عیبی تو پیش دیگران آورد و شمرد بگمان عیبی تو پیش دیگران خواهد برد نارسایی های مردم از سخن پیدا شود پیستهی بی مغز اگر لب واکو ندرسوا شود تواضع اگر همی خواهی رفیقی بیدی مجنون شو که بی انگوشت کش از کوزه روغن بر نمی آید در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست یا سخن سنجیده گو ای مرد دانا یا خموش در این ستم کده بالی هواس مزن بدل نگاه دار سرخیش چون مگس بدود است سنگ دل است هر که بظاهر ملایم است پنهان درونی پنبه نگر پنبه دانه را سنگ دل را از صفای صحبتی چی سوت سنگ دل را از صفای صحبتی چی سوت سنگ را دلوان نشد هرچند در دریا نشست شنواندگانی عزیز خدا کند از این اندرس های ما که به شعر ترتیب شده بود بهره نیک برده باشید و کنون نوبت را به بخش دومی برنامه می دهیم که مورد سیب مسلم در مورد فضیلت ماه مبارک رمزان به خدمت شما سخنانی را می داشته باشند نحمده و صلی علی رسوله الكریم اما بعد قال الله سبحانه وتعالی في القرآن الكریم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية ونعب سيدنا الخضر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه على النار سبعين خليفا متفقنا عليه صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادران مسلمان و مجاهد هم از محاضرین و انصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برکاته روزه نیز بمنزل نماز یک فرض خداوند است چنانچه الله جل جلاله در آیت مطلوبه می فرماید فرض کرده شده از بالا شما روزه چنانچه فرض کرده شده بود به کسان پیش از شما باید مسلمانان اعتبار کامل داده اهتمام و پابندی نمایند روزه فضایی زیاد دارد از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کرده شده است که پیامبر صلی الله علیه و فرمودند هر بنده که روزی در راه خدا روزه میگیرد خداوند یقینا صورت او را به خاطر آن روز به مدت 70 سال از آتش دوزخ دور میکند روزی ابو امامه به نزدی پیانبر صلی الله علیه وسلم آمدند و, آمدن و از سوال کردند یا رسول اللہ مرا از انجام دادن کاری که باعث داخل شدن و بهیشت می شود. با خبر ساز رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب فرمودند علیک بی ساوم فا اینه اللہ روزه بگیر چرا که عبدال پاداش, پاداش هیچ چیز مثل آن نیست در حدیث قدسی خداوند متعال میفرماید وأن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن عظم له إلا الصيام فإنه لي وعنا أجز به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إن سائم والذي نفس محمد لا لخلوف فمسخ ف مسایم اعترب اند الله من ریخ المیزکی لسایم فرهتانی یافراه هما اذا افتر فره بفطری و اذا لقی ربه فره بیسمه از ابو هریل رضی الله تعالی نور شده است از که پيامبر صل الله علیه و سلم فرمودن خداوند از وجل میفرماد هر عمل از اعمال انسان برای خود است جز روزه که آن برای من است و من پاداش آن را میدهم و روزه سپر است در مقابل دوزخ و گناهان پس وقتی یکی از شما روزدار بود دشنام و ناززا نگوید و یا با صدای بلند بر دیگر داد نزند و اگریه که با او بد گفت یا ویا با او جنگید بگوید من روزه هستم و سند با کسی که جان محمد صلی و سلم در دستوز بوی دهان شخص روزدار نزد خدا از بوی مشک خوشتر و با ارزش تر است و شخص روزدار، دو خوشی دارد که با آن دو بسیار شادمان میکند یک هنگامی که افطار می کند با افطارش خوشحال می شود و دیگر هنگامی است که با خدای خود مراقبت می کند که از روزه اش شادمان است اما خوشحالی روزه هنگام افطارش وقتی است که نفس ها میل دارند به سوی چیزهایی که از آنها منع شده اند از خوردن ها آشامیدنی ها و شهوات نفسانی روزه برای نزدیک شدن به خداوند شهواتش را ترک می برطاعت و عبادتش می افتاید و به طرف او مبادرت می ورزد. در شب که خلوتگاه بنده و پروردگارش است بر و او را تصمیم می گوید و در روز به امر پروردگارش آنچه را که او برای روزدار حرام دانستن ترک می کند و به آن بر گردد مگر به امر پروردگارش پس در هر دو صورت فرمانبرداری برداری کرده است و به همین علت از روز گرفتن پی در, پی در چند روز بدون تاهم نای است. Pasagar roza dar taqarrub ba suy Khodavan Bihurat khohan bashad bayad be khorat va avarat Todar dar dargah parvardegarash mawrud mahfarat va amurzesh qalagh gerad va shayad duaash mostajab shavad hamon tari ke dar hadis Kerat ast iftarash da'vati ast ke rat yani duai ke mostajab mishavad agar kasi dar hangam iftaro niyatash Mihurat, ja myös Niru, Daru Niro tavann va energi baujut avarat. Taa ruus bad, betavanat ruusaa vigrad, va betavanat taat vaibaldat kuna. Brajuu ajru poudaashi nausteko hajuut. Hetta karau hengä mihaa, cidaa ja va cidaa ruus niyt kuna. Baynki baadaaan brajuu anjam taat vaibaldat ilahin Niro vigrad. Haa brajuu vaibaldat mupsut mihevad. Pas شب روز عبادت است و دعایش در هنگام روز مستجاب خواهد شد و همچنین در هنگام افطارش پس او در روزه اش روزدار صبور است و در شبش اش عبادت کننده و شکر همان تر که گفته شده خوشحالی روزدار هنگام افطارش از پس در رحمت الهی است چرا که خداوند در سوره یونس آیت 58 می فرمید. قل بفضل الله و برحمته فب داره کفل هو خیر من مجمعون ای رسول من و مردم بگو شما باید منخسرن وفض و رحمت خداون شادمان شوید که آن بهتر و مفیدتر از است که برای خود اندخته میکنید و شرط آن این است که چیزی که به آن افطار میکند حلال باشد اگر بچی چزی گه خداوند اون رو حرام کرده افطار کرد خداوند دعای اش رو استجابت نمیکنه همان طور که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرماید یمد دو یده ای السماء یا ربی یا ربی و دار ہاری Haram غذای حرام خورده حرام نوشیده حرام پوشیده واس حرام سیر شده پس چگونه دعایش پذیرفته می شود فضیلت های ماه رمضان و روزه اش بالکل زیاد است اول از برتری های که ماه رمضان بر ماه های دیگر دارد این است که در آن کتاب الهی همراه با دلایل بر بشریت شده است دوم در آن شیطان و درهای آتش بسته و درهای بهشت باز میگردد همان طور که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ما ابن حریره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا جا رمضان فُتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصُفدت تو گویی که از همه مای مبارک محروم مانده است. چارم روزدار در این ماه با روزه اش غفران و آموزش الهی را بداست میعورد. امان طور که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم میفرمیند منصام رمضان و ایمان و احتسابن و غفر الله ما تقدم میندن بی. کسی که رمضان را با ایمان خالص روزه گرفت و از پاداشش را فقط از خداون خواست خداون از گناهان پیشون او در میگذرد. پنجم با زنده داشتن شبه ها در طاعت و عبادت پروردگارش به آمرزش و مغفرات او دست می همه همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند، کسی که شب رمضانش رو با ایمان خالص برپا داشت و طلب عجر و پاداشش رو فقط از خداوند خواست گناهان پیشینش بخشیده می‌شوند و همچنان در آخر شبه های رمضان گناهان روزدار بخشیده میشوند. ششم فضلات رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادند که خداوند متعال آزاد و رها میکند بندگان گناهکارش از آتش در تمام شبه های ماه مبارک رمضان هفتم برای روزدار خنگام افتارش افطارش دعایی است که رد نمی شود هشتم فرشتگان برای روزدار تا وقتی که افطار میکند استغفار میکنند نهم هر روز بهشت تست زینت میدهد و میفرمایند رنج و سختی ها و چیزهای آزاردهنده دور می از بندگان سالی من و به زودی من می دهم ده پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماین در رمزان مسابه با ثواب حج است یازده بوی دهن روزدار در نزد خداوند متعال خوشبوتر است از بوی مشک دوازدهم خداوند جهنمیان را در تمام شب‌های رمضان رمزان از آتش جهنم می رهاند. سدسوم، شیاطین زندانی میشوند. چهاردهم، در ماه مبارک رمضان، دروازه های بهشت باز میشوند و دروازه های آتش دوزخ بسته میشوند. حکم و فواید و روزه ماه مبارک رمضان. تعریف روزه خودداری کردن از خوردن ها و آشامیدن ها از طلوع فجر تا غروب خورشید و این فرض ثابتی است در قرآن کریم. و سخن on پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر کسی منکر چنین فرض شد او مرتد و کافر است که باید توبه کرده اقرار به فرض بودنش نماید و کشتنش واجب است و باید روزه رمضان با دیدن هلال ماه با دیدن ماه یا با اتمام 30 روز کامل ماه شعبان İbn Qayyim Jazirahî mamlakî ifaamet Ra'yûşi Peygamber Akrâm sallallahu aṣlam barin bût ki ma yebbalak Ramazan rabadidin hilâl ân ma şuru mi farbidan. Vaya be isbad rabadidin ân asşahadat insanî drûst, vaba iman ki yek bar başahadat farzandî âmar, obar diger başahadat vagoayi mardî rûstayî ki baw e'temad şştan rûze girtan. Vagar çinan ki hilâl Ramazan rabadidin vakeş ham guayi başahadat rabadidin on namidat. وایا حوا ابری بود در این صورت امر می فرمودند که 30 روز ماه شعبان تمام کنند سپس روزه ماه مبارک را شروع کنند از شیخ ابدباس سوال شد در بعضی کشورهای اسلامی مردان با تقویم با تقویم ها اکتفا می کنند بدون پس حکم این چیز جواب داد رسول الله که مسلمانان ماه Abdiden aftarkoonan, jos ilmasto on kylmä, on välttämätöntä tehdä 3 päivää syyskuun aikana. Tämä on yleensä välttämätöntä, mutta jos ilmasto on kylmä, on välttämätöntä tehdä 3 on yleensä välttämätöntä, mutta jos ilmasto on kylmä, on välttämätöntä tehdä 3 päivää syyskuun پس pues, ای hey, muhajir ja و مجاهد دقت کنید به فضائل و درجات Ramazan. مبارک رمضان در روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بیات سست نکنید بعضی‌ها me درد میکنه روزه نمی خوره بعضی روزه Agar ozi sharī boshat inson barozagristan yak marraz bisor saxt mesha ba marq qarab mesha da u surat roza xordan shariat jozmida ba kamak mariz ki roza girftan susti bayad roza ra naxorat وندعنا واختنا نمigrin وما علينا إلا البلاخ جزاكم الله خير في <تصفيق> الحب وفي النور فيه اللؤلؤ المرجان ردد اصدق بالقران مثل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكران تلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكران تلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكران تلو المصحف هذا الذكران تلقى الخيرات تنقل أجرة، تنقل خيرا، وتنقل أجرة، تنقل خيرات، تنقل أجرة، وتحرر فيه الإنسان. أن وتحرر فيه يا شبل الإيمان، غرد وصدح بالقرآن. يا شبل بالقران غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرّد يا شبل الايمان بالقرآن. يا شبل الإيمان. Sitten niffmassaan me شنماندگان عزیز قسمی که به همه ما و شما معلوم است که در هفته گذشته مجاهدین دست آورده های خوبی را در سمت شمال افغانستان داشتن. از این جمله یکی هم عملیات استشهادی در ولایت سمنگان می باشد که آن احمد خان سمنگانی، رئیس استخبارات سمنگان و قماندان زون 606 انصار به شمول 22 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شدن، و در این مورد صدای جندالله مساحبه ای را انجام داده با یک برادر مجاهد که اینک خلاصه ای آن را به خدمت شما تقدیم می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم به برنامه ما خوش آمدید. در قدم اول خود را به شنواندگان رادوی صدای الله معرفی نمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسم ما حباس از ولایت سمنگان و لسوالی در ایسوف می باشه. که مدتی سی سال بیشتر میشه که در همین رسته ها کار کرده راست شما بعد از فراغت تعلیمات نظامی به کجا فرستاده شدید بعد از فراغت تعلیم نظامی فرستاده نموصف همین را به سمت و شمال در ولایت سریپول فرستاده شدیم در تیر وقت را در اونجا سپری کردیم یک برادر ما به نام عمار نو ولایت سریپول در آنجا جام شادر را نوشدان باز بعدن ما همرای دیگه برادرای همارتی بسیار اگرویش خوب یک اگ بخاوته برادری در آنجا تقریبا دو ما سه ما را در آنجا سپری کردیم بعد از آمدیم ما در اولایتی سمنگان در اینجا بامرای برادرها در هک جای در اولسوالی در ایسوف به نامی اولسالی در ایسوف در آنجا بامرای برادرها بامرای نور محمد مبارز محصولی آنها بودن در آنجا ما بامرایشان را سپری کردیم بعدان آمدیم ما در وزیرستان، در پیش امیران چیزی که رویش رفتاری که ما کرده بودیم در آنجا الحمدالله به امروی برادرهای همارتی، به امروی برادرهای غیره که مردم ها که هستند اخوات و برادری یک قسم رویش خوب کرده بودن الحمدالله هیچ کس حزما مردم حاضرده و یا خسته و یا کدام چیشه دیگر نیستن شما اکنون در عملیات‌های جهادی در سمت شمال افغانستان فعال خدمت می‌نمایید. جهاد موجودی آنجا را چگونه بررسی می‌نمایید؟ الحمدلله فعالیت‌های مجاهدین در سمت شمال به هر ها شریکی روان هستند. هم در بدخشان، تخار، خندوز، بغلان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان الحمدلله در هر جایش کارا روان هستند. چی همارت است چی حرکت است در ما بین یک اخوت و برادری و بمرای هنسارا و بمرای مردم چگرویش خوب کردن الحمدلله همه مردم از مجاهدین خوش هستن در هیچ جای کدام زورگیری یا کدام کدام کاری غیر شری را انجام ناده در مورد فعالیت های چند روز اخیر معلومات کوتاه دهید الحمدلله در چند روز اخیر Dersäm tässämällä, varsinkin ulaitteisamanjan, on hyvin hyvä työskentely. Vastaa, varsinkin ulosvalloissa, joissa on ulaitteisamanjan, että tietysti usein on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on on joitakin ulaitteisamanjan, joilla on Murdot kardan diga Bamroi ystävät ja rakkaajat, jotka ovat aiemmin ajatelleet, että he ovat yksi heistä, jotka ovat yksi heistä, jotka ovat yksi heistä, jotka ovat yksi heistä, jotka ovat Murhaiden dar injä murdarside as kabili poliisu urdu harbakivu komandani komandanoi harbakivu käsän der injä murdarside Gistan der chän ruusi ääkär der ulussali der Yusuf ulaitte samankän ke alhamdulillah murhaiden der injä xuhida kari nishanda Gistan der tädädä heftad äštädä nafar urdi mulli vu poliisu شیلچلی پاینتر دگان اونها را زخمی کردگان بسیار یک ضربه شدید بر دشمن وارد کردگان ضربه کاری زدگان دشمن الحمدلله در همین که جنگ Bazi موترایشان در اونجا تخریب شده گسن از ura لینجر و ورا Rusi آمریکایی و باز بز موترای دیگر هم دیگر در روز اخیر در ولایت سمنگان در دشت رباط دگ منطقه برای دولت بسیار فعالیت ها میکرده بودن بسیار این یک نفری که فداکاریا به دولت نیشان میده بودن که نفری حوال دولت بودند دیگه بالاخره اینها با به رئیس جمهوری ازباکستان ارتباط خاص داشته بودن در ارتباط مجاهدین مهاجر که آنها توشنه خونی اینها ها بودن که میگفته بودن که مجاهدی مهاجر را در من تسلیم بکنید احمد خان در زمان سابق به همرای دولت بوده هم باز هم به با دولت هستند خود ازیه یک نفری ظالم که خودش هم حکل فارلمان حکمت میکرده بودند بالاخره در سمانگان برادر عزیز بعد از کشته شدن احمد خان اکس العمل دشمن در مقابل مجایدین چی گناه بود و چی گرهایی را انجام دادند؟ بعد از کشتشده نیمت خان در سمنگان دشمن بسیار اک زربه شدید راسترف مجایدین بری خود دید در حینی حال که دشمن نیرویش بسیار زیافت بودند مجایدین بسیار تعداد کمی هم از جهت تقوه، از جهت اطاعت، از جهت اخلاص و اخوات و برادریشان برای دشمن بسیار اک ضربه کاری وارد کرده گستن که تعداد 30 بعد از کشتشون احمد خان مجاهدین برای دولت اک ضربه کاری وارد کرده گستن بعد از قضیه احمد خان در اولسال در که دشمن در سری مجایدین حمله کرده بودند. سی دیگر هم مجایدین باز هم مردار کرده گیستن. بسیار در اینجا دولت یک ضربه شدید خورده گستن الحمدالله مجایدین بسیار فیده کاری در این باره بسیار قربانی دادگستان در این را الحمدالله مجایدین حالی هم دارن در اخیر از اللہ تعالا طلب استدعا دارم که در هر نکته جهان مجایدین که هستند آنها را افاظت بکنند الله تعالی نصرت و کامیابی را نصیب حالی مسلمانان بگردانند الله تعالی در هر جایی که بندی ها هستند آنها را از چنگال ظالمین ریها بسازند الله تعالی شهادتی برادرهای را قبول بکنند که الله تعالی برادرهای مندگیرم توفیق عمل بیتن که تا یا قطر خون دارن در ایرا قدی علم بکنند در مقابل کفار در اخیر دعا میکنم که Allahum mansurum muja fi kulli makan, Allahum mansurum muja fi kulli makan, Allahum mansurum muja fi kulli makan, Allahum mansurum muja idina fi Afganistan, Pakistan, al Iraq, Wachachachin -Ti ja Fala Sinummaa, Saar, Islam. Wassalallahu ta'ala, wassalallahu ta'ala, wassalallahu ta'ala, kari xalkijim hamma dinuan uri arsinwali, wassalallahu ja jajmain mirahmatika ja arhamarra. Pohata xakura ximakidarbar namaima istirakkaadi. Oknunna u bat ba jaktaron ei farsi iġediet. Kännä uudergo shi sen kahdaraa di dubood, pascaraa dergodi da gash antunan kespi dubood. Ba miyani chekcheki shamsir با خلالی دود باروت شعلها و گرد و گاز شیمهی دل کشف روضاتی جنان بویی ده بود موج در بحری دلش پرشور بود برسر و رویش بسی باران لطفاری ده قرنبت عاشق جرى أزل الذتي دنيا بريد زخمها زندانها زولانها بقزي دبوت بمباك الظاهري آرى سيد شمال نداش معني الله أكبر رمزد فهمي دبوت Asdaa iraşşadari bam safiri tuftaş Şirk mi fin daş eğer az merdemi terciidabut Sarfada dar pay maulaba teri bi destu pa Lahzey parwazı sarfada darfa ay maula batani bi dastu pa lahzae parwazir ha shimastawar raqsi از گزاری معرک سوی ویسالی آر رفت جامعی گلگن بخون بهری حضور پوشید بود گرن او درگو شیسنگر خدا را دید بود پس جرا درگو دیداغش آنچنان چسپید بود مرواری دی هفته فَلَلْجُودِ يُفْنِي الْمَالَ قَبْلَ فَنَائِهِ وَلَلْبُخْلُ فِي مَالِ الشَّحِيحِ يَزِيدُ زَلَتًا مِثْلَ الثَّقْبِ عَيْنِ سعيد ابن عامر جمحي رضي الله عنه مرده كه آخرت را که در نزدیکی مکه بود رفت تا در مراسم اعدام خویب بن عدی رضی الله عنه یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، که به او خیانت کرده و اسیرش کرده بودند شرکت کند جوانی و مردانگی سعید به او این توان را داد که با کنار زدن مردم جلو برود و دوشا دوش سرداران قریش امثال ابو سفیان ابن حرب صفوان ابن امیه و غیره که جلو جمعیت بودن قرار بگیرد ایشان فرصت یافت که اسیر قریش را دست و پا بسته ببیند و این در حالی بود که دستهای زنان و کودکان و جوانان او را به سوی میدان اعدام میراندن تا از او بجای محمد صلی الله علیه وسلم انتقام بگیرند و به کشتن او انتقام خون مقتولین بدر را گرفته باشند انبوه جمعیت به همراه اسیر خود با جایگاه آمدن در این میان سعید جوان با قامت بلندش به خوبیب که داشت به چوبه دار نزدیک می شد نظاره می کرد صدای آرام و استوار او را از میان سر و صدای زنان و بچه ها شنید که می اگر ممکن است مرا برای دور دورکعت نماز مهلت دهید لحظه بعد سعید او را در حال یافت که به قبل ایستاده بود و نماز میخواند. اما چی نمازی زیبا و کامله؟ پس از تمام نماز خطاب به سرداران قرائش چینین گفت اگر شما گمار نمیکردید که من از ترس مرگ نماز را طولانی میکنم به خدا قسم خیلی طولانی میخاندم بالاخره با چشمان خودش دید که قومش در حال که او زنده بود اعضای بدنش را یک پس از دیگری قطع میکردن در همین اسنا بود که به او گفتن آیا دوست داری محمد صلی الله علیه و سلم به جای تو باشد و تو نجات بیابی؟ او در حالی که از سر تا پای بدنش خون میریخت فریاد براورد به خدا قسم من تا این اندازه هم دوست ندارم که سالم و آرام در میان فرزندانم بمانم و در عوض آن پای محمد صلی الله علیه و سلم را خاره اذیت کند اینجا بود که مردم دستهایشان را در هوا تکان دادند و سرو صدایشان بالا گرفت او را بکشید او را بکشید در این اثناء سعید رضی الله عنه خبیب رضی الله عنه را دید که چشمانش را به طرف آسمان بلند کرد و در آخرین لحظات حیات با خدا این گونه رازو نیاز کرد اللهم احصه عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احده سرانجام آخرین نفسهایش به پایان رسید، زربات که از نیزه و شمشیر نصیب جانش شده بود قابل شمارش نبود، افراد قریش به مکه برگشتند و در گیر و دار مشکلات بزرگ خوبیب با کشتن او را به فراموشی سپردند، اما سعید جوان لحظه هم خوبیب را از خاطرش نبرد، اگر میخوابید او را خواب میدید و اگر بیدار بود در فکر و خیال او بود، او را پیش خود مجسم می کرد که دارد با سکون و اطمینان در برابر چوب ایدار نماز می خاند. آهنگ صدایش هنگامی که برای نابودی قریش دعا می کرد در گوش او انداز بود. لذا می حراسید که مبادا عذاب الهی به صورت ساعقه از آسمان فرود آید و یا صخره سنگ از آسمان بر سرش بیفتد. خوبیب رضی الله عنه درس خوبی به سعید داد. و آنچه نمیدانیست به او آموخت، به او یاد داد که زندگی واقعی عقیده است و جهاد در راه عقیده تا آخرین لحظات حیات. و نیز به او یاد داد که ایمان راسخ و محکم شگفتی ها می آفریند و معجزات زیادی به نمایش می گذارد و مهمتر از همه به او فهماند مردی که اصحاب این همه او را دوست دارند واقعا باید پیامبر بوده و از طرف خدا تأیید شده باشد. اینجا بود که خداوند سینه اشرا برای پذیرش اسلام گشود و بلا فاصله در میان جمع از مردم برخاست و از بوتها و اعمال زشت قریش اظهار بیزاری کرد و رها کردن بتها و پیوستن خودش را به دین اسلام اعلان داشت سعید عازم مدینه شد و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلام درآمد و همراه با آن حضرت صلی الله علیه و سلام در جنگ خیبر و جنگهای دیگر حضور پیدا کرد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرد در حالی که سعید راضی بود پس آن سعید زیر فرمان دو خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه قرار گرفت او در زندگی اش نمونه یگانه و بی‌نظیر از یک فرد مؤمن بود فردی که زندگی آخرت را در مقابل زندگی دنیا خرید و و پاداش خدا را بر امیال و هواهای نفسانی ترجیح داد دو خلیفه رسول تقوا و صداقت سعید را می شناختند او را می شنیدند و به گفته های او گوش فرا می دادند روزه از نخستین روزهای خلافت عمر رضی الله عنه پیش او رفت و خطاب با ویچنین گفت ای عمر تو را وسیعت می کنم در مورد مردم از خدا بترس و در مورد اجرای احکام او از کسی حراسه بدل را حمده مواظب گفتارت باش مخالف کردارت نباشد زیرا بهترین آن است که عمل خود شخص آن را تصدیق کند همچنین به تو سفارش می‌کنم در مورد کسانی که خداوند کاری آنها را به تو سپرده چه دور باشند و چه نزدیک توجهی کافی داشته باش و آنچی را برای خود و خانواده اتمی پسندی، برای آنها نیز پسند و آنچی را که برای خود و خانواده ات دوست نداری برای آنها نیز دوست نداشته باش در راه حق و برای رسیدن به حق هر نوع سختی را بپذیر و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده نه راست حضرت عمر رضی الله عنه چی کسی از عهده انکار کار برمی آید؟ سعید رضی الله عنه مرد مانند تو که خداوند کار امت محمد صلی الله علیه وسلم را بدو محول کرده می تواند این کار را انجام دهد کسی که فقط با خدایش باشد بعد از مدت حضرت عمر رضی الله عنه از سعید دعوت به همکاری می کند و از اون می خواهد والی حمص بشود سعید رضی الله عنه ای عمر تو را به خدا سوگن مرا در فتن نینداز حضرت عمر رضی الله عنه با حالت عصبانی گفت عجب آدم هایی هستید ان کار را به عهده من واگذار کردید و از من کناره می گیرید. سوگن به خدا از تو دست بردار نخواهم شد. سپس او را حاکم حمص تعیین کرد و به او گفت آیا چیزی برایت مقرر نکنیم؟ سعید من احتیاج به آن ندارم. زیرا مبلغی دریافتی از بیت المال بیش از نیازی من می باشد. این را گفت و به سوی حمص حرکت کرد. دیر نگذشت بود که گروه از اهل حمص که افراد قابل اعتماده بودن خدمت عمر رضی الله عنه حاضر شدن حضرت عمر رضی الله عنه فرمودن اسامی فقراء حمص را به من بدهید تا نیازهای آنها را برطرف کنن آنها فهرست از اسامی فقراء تقدیم کردن که در میان آنها اسم سعید ابن عامر نیز به چشم میخورد حضرت عمر رضی الله عنه کدام سعید ابن عامر امیر ما امیر شما فقیر است؟ بله با خدا روزهای متوالی میگذرد در حالی که در خانه او آتش هم روشن نمی شود اشک از چشمان حضرت عمر رضی الله عنه سرازیر شد آنچنان که ریش مبارکش تر شد بعد از آن هزار دینار در کیسه گذاشت و گفت سلام مرا به او برسانید و به او بگویید که امیرالمؤمنین اینها را برای شما فرستاده است تا در رفع نیازهای خود به مصرف برسانی هنگامی که کیسه پول را به سعی تحویل دادن و چشمش به آن دینارها افتاد، به درنگ آنها را از خود دور کرد و فورا جمله اینا لله و اینا الیه راجعون را به زبان آورد. گویا مصیبت بزرگ بر او وارد شده و یا امر ناگوار برای او پیش آمده بود. زنش با حالت مزطرب بسویش شتافت و گفت، سعید چه اتفاق افتاده است؟ آیا امیر المؤمنین فوت کرده؟ سعید از این هم بالاتر. آیا مسلمین دچار حادثه شدن؟ سعید از این هم بالاتر زن خوب چیست که از این هم بالاتر باشد؟ سعید دنیا نزد من آمده تا آخرت را خراب کند و از این طریق فتنه در منزل من راه یافت زن این که کاری ندارد خودت را از دست آن نجات بده این در حالی بود که زن از پولها خبر نداشت سعید حاضر من را در این امر کمک کنی؟ زن بله سعید دینارها را برداشت و آنها را در کیسه های متعدد قرار داد و سپس آنها را بین فقراهای مسلمین تقسیم کرد مدت زیادی نگذشت بود که حضرت عمر رضی الله عنه به سرزمین شام رفت تا به بررسی اوضاع منطقه بپردازد وقتی به حمص که آن را کوفه کوچک نیز می‌گفتند رسید مردم برای عرض سلام به محضر وی آمدند حضرت عمر رضی الله عنه از ها در مورد رفتار امیرشان سوال کرد آنها از او شکایت داشتند که چهار مورد را بازگو کردند هر مرید از مرید دیگر بزرگتر بود حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید من او و مردم را در کنار هم نشاندم و بعد از خدا خواستم که حسن ظن من نسبت به وی اشتباه در نیاید چون من خیلی به او اعتماد داشتم وقتی همه جمع شدند با آنها گفتم از امیرتان چه شکایت دارید گفتند و این که تا آفتاب بالا نزند پیشی ما نمی آید، گفتم، سعید در این مورد چی میگویی؟ کمی سکوت کرد و بعد چنین گفت، خدا قسم، نمیخواستم در این مورد چیزی بگویم، اما چنین خود را ناچار می بینم، باید بگویم که ما در منزل خدمت گذاره نداریم، بد انجهت هر صبح برای آنها آرت تر میکنم و صبر می کنم تا خمیر شود، سپس نان میپزم و بعد از آن وضو گرفته و به سوی مردم میآیم. گفتم دیگر گفتم دیگر در چی موردی شکایت دارید؟ گفتن همین که شب میشود کسی را تحویل نمیگیرد. گفتم سعید در این مورد چی میگویی؟ گفت با خدا سعی نمیخواستم در این مورد چیز فاش شود. اما باید بگویم که من روزها را برای آنها اختصاص داده ام و شب را برای خدا. گفتم دیگر از چی شکایت دارید؟ گفتن او یک روزی از ماه اصلا بیرون نمیآید. گفتم سعید چی هست بگو؟ گفت ای امیرالمؤمنین من خادمی ندارم و غیر از همین یک دست لباس لباس دیگر هم ندارم لذا هر ماه یک مرتبه آن را می و منتظر میمانم تا خوشک شود از این رو نمی آن روز بیرون بیایم و در پایان روز از منزل خارج می شود. گفتم دیگر چی شکایت دارید؟ گفتند بعضی وقتها مدت بهوش می شود و از مجلسی که در آن نشسته کنار میگیرد گفتم چه طور سعید گفت من قبل از اینکه مسلمان شوم در مراسم شاهید قتل خبی بودم و با چشمان خود دیدم که کفار قریش بدنش را قطعه قطعه کردن و به او گفتند آیا دوست داری محمد صلی الله علیه و بجای تو می بود؟ ولی او می گفت خدا من این قدر هم دوست ندارم که عوض این که میان فرزندانم باشم خاره به با پای آن حضرت صلی اللہ علیه و سلم فرو رود. لذا وقتی به یاد آن روز می افتم که چطور او را تنها گذاشتم گمان می کنم کار نابخشودنی کرده ام از این جهت بهوش می شوم. در این هنگام حضرت عمر رضی الله عنه از اینکه خداوند خداون گمان او را خطا نکرده بود شکر و سپاس خدا را بجا آورد. بعد از آن هزار دینار برای او فرستاد تا با آن نیازهایش را برطرف سازد هنگامی که زنش آنها را دید به او گفت خدا را شکر که ما را از خدمت تو بی نیاز کرد دیگر لازم نیست که تو خدمت بکنی آنچه لازم داری بخر و یک نفر هم به عنوان خادم استخدام کن آیا برای تو چیزی بهتر از این وجود ندارد؟ زن نمی دانم. شما بفرمایید سعید انها را به کسی میدیم که هنگامی که بیشترین نیاز را به آن پیدا کنیم به ما پس بدهد. زن، او کیست؟ سعید، انها را به صورت قرض حسنه به خداوند می سپارم. زن، بسیار خوب، خداوند به شما جزای خیر دیهد. مجلس آنها هنوز تمام نشده بود که دینارها را در چندین کیسه گذاشت و به یکی از افراد خانواده داد و گفت. اینها را به bewa بده و بده و اینها را به فلان یتیم فلان برسان عامر رضي الله عنه خشنود باد زیرا او از يا سيدك ثلاثه الكمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق روز جمعه 23 شعبان مطابق 13 جولای در نتیجه یک انفجار در شهر محترلام مرکز ولایت لغمان رئیس ریاست امور زنان این ولایت کشته شده است رسانه‌های های می‌رساند که در این رویداد شوهر این زن و یک تن دیگر زخمی شده ان. سخنگوی واری لغمان می گوید که رئیس امور زنان این ولایت در حال خریداری در بازار بود فرد ناشناس بمی مقناطیسی را در مدره جابجا کرد به گفته ایوه این بم بعدا توسیط ریمود کنترول انفجار داده شد و در همین روز مقامات در پاکستان می گویند در انفجار یک بم در جرایان یک راهپیمایی سیاسی در ایالت بلوچستان حد اقل تن کشته و تن دیگر به شمول رشید ناصر عضو عوامی نشنال پارتی زخم برداشتند و گفته مقامات حمله روز جمعه همایی را هدف قرار داد که از سوی هواداران عوامی نیشنل پارتی در کوچنه شهرک در نزدیکی شهر کویتا راه اندازی شده بود. به اساس گزارش رسانه های پاکستان این بم که از راه دور کنترول می شد در نزدیکی محل برگزاری این گرد همایی جا شده بود. استر احکمه پاکستان برا جا پرویز اشرف صدرزم این کشور دستور داد. تا دا دست داشتن رئیس جمهور آسیف علی زرداری را به فساد اداری دوباره آغاز کند مخالفان رژیم سوریه میگویند که نیروهای حکومتی این کشور با استفاده از توپها بهش بیش از 200 تن را در ولایت مرکزی هما قتل عام کردند مقام ها در ولایت پروان میگویند تلاش ها به هدف ردیابی 3 فرد اختداف شده ادامه دارد این 3 فرد روز جمعه در مسیر شهرهای قربان و بامیان رادر شدند تا حال در مورد حویات این افراد چیزی گفته نشده است. و در همین روز در نتجه عملیات مجاهدین در ولسوار برکه ولیت بغلان که موتر یک وکیل شورای ولایتی هدف قرار گرفت وکیل مذکور با یک کماندان ولسوار برکه کشته شدند. بعد از وقوع این حادثه زمانه که پلیس به کمک ایشان آمدن مجاهدین بالایشان آتش گوشده هفت نیشان نیز زخمی ساختند. روز شنبه 24 شعبان مطابقه 14 جولای در نتیجه یک عملیات استشهادی در ولایت سمنگان 23 تن به شمول احمد سمنگانی عضو ولوسی جرگه افغانستان احمد زامین قماندان زون 606 انصار و رئیس امنیتی ملی سمنگان کشته و بیش از 60 تن دیگر به شمول یک عضو دیگری ولوسی جرگه و شماری از مقامات زخم برداشتند. گفته شده است که این عملیات در مراسم عروسی دختر احمد خانی سمنگانی رخ داده است که حمله کننده در حین احوالپرسی پرسی به احمد خانی سمنگانی مواد انفجاری خود را انفجار داده است گروهی از ناظرین میل متحد روز شنبه به سوی قریهی سنینشین ترسمه در ولایت هما رفتند این در حالی است که فراریان مخالف حکومت سوریه از موج تازه حملات دستویر بخش‌های آن کشور نس خبر می‌دهند با گفته گروه حقوق بشر سوریه نیروهای حکومتی روز شنبه شهرهای اربیت و غزاله را در جنوب آن کشور هدف قرار دادند این گروه میگوید که تن از عساکر نیروهای ناتو روز شنبه در شرق افغانستان کشته شده است. در خبرنامه آیصاف گفته شده است که یکی از این عساکر در نتیجه عملیات مجاهدین و سیتن دیگرشان در یک رویداد دیگر کشته شدند. در مورد محل دقیق و هویت سربازان معلومات دقیق گفته نشده است. منابر گفته مرتدین از آغاز سال 2012 میلادی تا کنون 237 عسکری خارجی در افغانستان کشته شده اند. در نتیجه‌ی انفجاری یک کنار سرک در شرق ترکیه، حدقل در نفر زخمی گردیدند. این حمله روز شنبه بالای یک موتر سرویسی پلیس صورت گرفت. روزی یکشنبه شمبه 25 شعبان مطابقه 15 جولای وزیر تحصیلات عالی افغانستان صبح روز یکشنبه از یک انفجار ماین جان به سلامت برد. گفته می شود که در این عملیات سه محافظی وی شدیداً زخم برداشته و خودی وی سفرش را به کندوز لغو کرد. در یک خبر دیگر در دو انفجار پی هم در شهر پولی علم و لوگر صبح روز یک شمبه بیستن زخم برداشتن. کماندان امنی این ولیت به یکی از رسانه های کفره گفته است که این انفجار مقابل اداره سیرمیاشت این ولیت رخ داده به گفته یو در این رویداد 5 غیر نظامی و پانزه مرتدین داخلی زخم برداشتند مسئولین محلی ولایت پکتیکا می گوین. صبح روز یک شنبه، سی تن از مجاهدین در نتیجه انفجار مان خودشان به شهادت رسیدند. و گفته مرتدین این حادثه زمانی رخ داد که مجاهدین می‌خواستند مانعی را در منطقه مالیزه و خیرکوی خیرکوت این ولایت جابجا کنند. مسئولین امنیتی ولایت پروان میگویند که در درگیری میانی مجاهدین و نیروهای افغان پنج تن از مجاهدین به شهادت رسیدند به گفته مرتدین مجاهدین ذکر شده قصد داشتند که ماینی ما را در ولسوالی بگرام این ولایت جاسازی کنند گفته شده که در این درگیری سی تن از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشتند در نتیجه لغزش زمین ناشی از های مدهش اخیر در جنوب غرب ژاپن بیش از هزار نفر در یک منطقه گیر ماندند گزارش‌ها از محل می برای اکمالات استراری برای این منطقه کوهستانی در شمال جزیره کیوشو از هلیکوبترهای نظامی استفاده می شود تا کنون 20 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلابه ها در کیوشو جزیره مهم جنوبی ژاپن، کشته شدند در این میان به دنبال بارانهای شدید در ظرف چهار روز گذشته در این مناطق به 250 هزار نفر هدایت داده شده تا خانه هایشان را ترک کنند وزارت صحت آمه میسر میگوید که در نتیجه فرو ستون یک پارتمان در حال امار در شهر ساحلی میسر روز یکشنبه 8 تن کشته شدند این وزارت گفته پنج تن دیگر در این ریداد زخمی شدند و گروه نجات جستجوی افرادی شدند که در زیر آوار گیر ماندند مقامات در ولایت دایکوندی میگویند شب یکشنبه 9 تن در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی خدیری آن ولایت کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند مقامات پاکستان میویند که اصابت یک مرمی هاوان بر منزل یک سرباز شبه نظامی در منطقه قوائلی خیبر سبب کشت شدن همسر و فرزند سرباز یاد شده شد گفته شده که خود سرباز در این روی زخمی شده است کوریای شمالی لویدرستیز اردوی این کشور را به دلیل بیماری که داشت سببک دور ساخته است روز دوشنبه و 26 شبان مطابق 16 جولای. مقامات ایراقی میگوین انفجار یک بمی کنار ایجاده باعث کشتشدان دو از کاری شد. گفته شده است، واسیت این نقله این دو سرباز حینی رفتن با این منزل بماین کنار ایجاده برخود کرده است. خبرگزاری رسمی میسر میگوید سارنوال آن کشور امر کرده است تا حسن مبارک رئیس جمهوری سابق آن کشور را که صحت آن بهبودی یافته است از شفاخانه نظامی دوباره به زندان انتقال دهند. وزیر دفاعی فرانسه به مقام های در مورد خروج نیروهای بین المیلری در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان صحبت کرده است جان افیس لی جریان روزی دوشنبه با رئیس جمهور اوزبکستان اسلام کریموف و دیگر مقام های اوزبک در اوزبکستان دیدار کرد و گفت ناتو می خواهد اساکیر و وسایت نظامیش را از رای اوزبکستان به اروپا و امریکا انتقال بدهد شورای نظامی اردوی آزادی گفته است نیروهای این گروه بعضی مناطق را در اطراف دمشق تحت کنترل خود درآوردند احمد الخطاب سخنگوی این شورا گفته است از مناطق المیدان تا دومان از کنترل حکومت بشار الاسد خارج شدند در شمال غربی و پاکستان در شهر بنو روزی دوشنبه دو تن از فدایان اسلام در یک پسته پلیس حمله نمود و آتش گشتند که این درگیری تقریبا 5 ساعت دوام نمود در نتیجه آن 16 تن از فوج مرتد پاکستانی کشته شدند بعد از کشته شدن مرتد احمد خانی سمنگانی، نیروهای افغان در ولسوالی در ای ولایتی سمنگان بر بالای مجاهدین حجوم نمودن. این درگیری تقریبا یک روز دوام نمود که در نتیجه دو تن از برادران ما، هر یک امیر محمد راهنما مسئول ولایت سمنگان و میاراج الدین به شهادت رسیده و پانزده تن از عساکر دشمن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدن. روز سه‌شنبه 27 شعبان مطابق 17 جولای مسئولین امنیتی ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری میانی مجاهدین و نیروهای خبیث افغان در ولسوالی قیصری این ولایت 9 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند طالبان می‌گویند که در این رویداد به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده است در همین روز در نتیجه انفجار یک ماین کناری جاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمن برای 9 تن تلفات وارد شده محمد شریف و لسوال این ولایت گفته است در این حمله که شبی سی شنبه و وقو پیوست یک پلیس کشته و چهار پلیس و چهار فرد ملکی زخمی شده است. گزارش ها میرسانند که آتش سوزی در شهر های قزاقستان به کنسولگری سوریه واسیب جدی رسانده است. گزارش از قزاقستان گزارش داده که بر آتش سوزی صبح روز شنبه منزله سیومی ساختمانی که اسناد کنسولگری در آن حفظ میشد و دفتر کنسل نیز در آن موقعیت داشت کاملا آتش گرفته و تخریب شده است. در گزارش آمده است که شکیان میرود که کسانی با پرتاب مواد انفجاری در ساختمان کنسولگری این آتش را سبب شده باشند. گزارش ها که والی نورستان شبیه سه به از یک عملیات مسلحانه مجاهدین در آن ولایت جان به سلامت برد. اما در جرایان درگیری سه پلیس کشته و زخمی شده اند. سخنگوی والی نورستان در یک رسانه کفری گفته است. والی نورستان از شهر پارون مرکز آن ولایت به سوی ولسوالی واما در حرکت بود که کاروان موترهای وای در مسیر راه هدف حمله مجاهدین قرار گرفت. و در همین روز مسئولیت‌های امنیتی ولایت اورزگان از نیروهای بین‌الملل و نیروهای افغانسی سپرده شده است مردان مسلح بالا یک متری سازمان صحی در شهر کراچی پاکستان فایر کردند و گفته مقامات در این درگیری یک دکتر خارجی که در گروه کمپین واکسینی فیو کار می‌کرد با یک راننده محلی زخمی شده است در نتیجه درگیری در سرحد قرغیزستان و اوزبکستان یک عسكري قرغذی کشته و دو غیر نظامی زخمی شدند پولیسان سرحدی می میگویند تبادل آتش در نزدیکی قریه سرحدی موسوم به باشی صورت گرفته است درگیری زمانی آغاز شده که مردم محل با وجود هشدارهای محافظین سرحدی کار اعمار یک سرک را آغاز کرده بودند سپس نیروهای سرحدی ازبک به منطقه رسیده خواهانی خوان توقیف کاری آنها میشوند اما باشندگان محل به این نخطر خیلی با رویه بد پاسخ میگویند در این درگیری به نیروهای ازبکستان هم آسیب رسیده اما تعدادشان معلوم نیست و در همین روز آیساف از کشته شدن یک سربازشان در جنوب افغانستان خبر داده است اما دربارهی محل دقیق وی و هویت این سرباز معلومات داده نشده است روز چهارشنبه 28 شبان مطابق 18 جولای در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در غرب افغانستان دو تن از نیروهای خبیث خارجی زخم برداشتند آیساف با بخشی خبرنامه این رویداد را رو تایید کرده اما در مورد محل دقیق سقوط هلیکوپتر و هویت سربازان زخمی شده چیزی گفته نشده است در همین روز مسئولیت تأمین امنیت شهر و ولسوالی های دند، دامن و ارغنداب ولایت قندهار از نیروهای بین الملل به نیروهای افغان سپرده شد مقام ها در پاکستان میگویند که حد اقال تن روز تان چهارشنبه زمانی کوشش شدن که یک بم کنار سرک در منطقی قوایلی اورگزای یک موتر را تخریب کرد رئیس جمهور کرزی اعتراف میکند که با گذشت ده سال هنوز هم دولت افغانستان فراهم آوری عدالت و مردم کشور را ندارد Makumat ulottivat ulkameriin, kuten tulosten mukaan. Yksi tapahtuma on johtunut yhden poliisin kuolemaan. Poliisi on myös saanut yhden poliisin on انفجاری که روز چهار شنبه یک موتر سرویسی سیاحان اسرائیلی را هدف قرار داد، منجر و کشته شدن حداقل هشت نفر شد که توسط یک عملیات استشهادی انجام شده است. وزیر داخلی بلغاریا گفته است که ششت جهانگرد اسرائیلی و یک راننده بلغاری در این حمله کشته و دهاتن دیگر زخم برداشتند. آیساف با پخش یک خبرنامه گفته است که روز چهار شنبه دو سربازی آنان در شرق افغ در نتیجه یک عملیات استشهادی در شهر دمشق سوریه داود راجعه شوهر خوهر رئیس جمهور و آصف شوکت وزیر دفاع حسن ترکمنی معاون وزیر دفاع و رئیس اداره بارانها در این رویداد کشته شدند. گزارش ها که ابراهیم اشار، وزیر داخیره و اشام اختیار رئیس امنیتی ملی این کشور شدیداً زخمی شده است واشنگتن میگوید که این حمله نشان می‌دهد که رژیم سوریه تسلط بر امور را از دست می‌دهد و صدر اعظم بریتانیا میگوید این عمل نشان می‌دهد که وقتی آن فرار رسیده است که رژیم بشار الاسد از قدرت کنار روید در نتیجه عملیات مجاهدین بالای کاروان نیروهای ناتو در نزدیکی پول رواتکی ولت ولایت 22 تانکر نیروهای ناتو هریق شده است روزی پنشنبه بیستونوی شهبان مطابقه 19 جولای آیصاف میگوید که یک سرباز آنان در جنوب افغانستان کشته شده است نیروهای آیصاف با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که سربازشان در نتیجه انفجار ماین کناری سرک کشته شده است مقام ولایت ولیت پکتیا بر کارمندانی پروژه اعمار بندیاب در ولایت حمله انفجاری و صورت گرفته که در نتیجه 7 تن گهشوا و چهار تن دیگر زخمی شدند و گفته این مقامات در این انفجار کارمندان مسلکی این پروژه هدف قرار داده شده بودند در این حال مسئولیت این حمله را طالبان به اوده گرفته و گفتند کارمندان امنیتی بخش اکمالاتی نیروهای ناتورا مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن 8 تن از آنان را کشتند بعد از اینکه حمله روز چهارشنبه در دمشق سه مقام ارشدی رژیم بشار الاسد را کشت. جنگ و درگیری میان مخالفین و نیروهای دولتی روزی پنجشنبه در نزدیکی ادارات دولتی در پایتخت سوریه آغاز شده است آژانس خبررسانی مصر میگوید عمر سلیمان که سالها رئیس استخبارات رژیم حسین مبارک بود در این برای تداعی با آمریکا رفته بود دیروز در این کشور وفات کرده است پایان اخبار شنماندگان عزیز این بود داشته های برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم گردید با شنیدن یک ترانه همه شما را به خداوندی منان می سپاریم جمعه خوشی داشته باشید و روز اول ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مع فروس صير الشاش أبي أضي في مشادة